اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين وصلى الله و صلی رسول الله و آله طیبین و قاهرین و معصومین و لعفت اینکه على عدادین حجمعین و مهم و فقن و جمعی مشغلین و رحمنا الراحمین هست که بحثی مسلح شد در مناسبت که میگرد کتاب مظموم شکر کارش شدیم از مکاس و قاعده علالیت رو عبر زمان ید ارز در فیر زمان اصباب متعدد داره یکی چند زمان ید استباه شد داری تعبیر میکنم به زمان ید داری تربیر میکنم زمان علالیت چون روایت نسانش علالیت اون باروایت نزید کرد یک کم قاعده یده اون قاعده ید غیر از زمانه اون علامت میکیت ید در اونجا تصرف هر کسی که تصرف ظاهرش مالکانه در یک شیب بکنه علامت این است اون میکنه این غیر قاعده زمان یده زمان ید از کردیم منحسرن یعنی منحصر به این معنا در مطونی که ببین بر منصوبه و واضحه از بقیه حدیث معروفیست علالید ما اخده از حدثات او یا حتی توعدی اما تا کردیم از بزرگان اهلتون نر از همون خودماشون گفتن حتی توعدی یهو اگر باشه تو زمان در نمیان حتی توعدی باشه زمان در نمیان چون توعدی یهو زمان در بر زمیر برمیگرد به معاخذت یعنی همون رو برگردون از که تا موجوده اما اگر تلف شد باید برگردون از توش در کردیم یک بحثی راجع به این است که خود امانت رو باید رد بکنید به صاحب امانت دوست این بحثی نداره یه زمانه. در بحث هم زمان در وقت زمان مفادش اینه که باید امانت رد بکنی اگر هم شد بدلش شد این چیزه زمان اگر هم طلب شد بدلش رو رد این زمان زمان ید مناس که اگر ید انسان در یه چیزی جاری شد خود این جریان ید این چیزا رو بگیره خود این منشأ برای زمان تا طاقتی بنابراین بحثی بود که ما مطرح کردیم زمانیت الان در کتب فکری ما به استثمائی نصال کویشمون آشق آمدن کاملا جا افتاده از کردن مرمون اصطاد مار در همین قاعده علالیه فرماندن که موسوب و صدور این رو باید اگه شه داره اما جبران میشه به عمل از خواب بل مختوب و صدور مخصن فرماندن دین آمنه و خاصه این رقایت جا افتادیم ما به دنبال این بحث بودیم که ببینیم زمان یک ثابت یا نه از کلم از این کتاب ابن حض از جلد نه کتاب ابن حض این چاپی که من دارم این چاپی که ما داریم چاپ به اصطلاح نوح جلدیه یه چاپی بردی شده یا جلدی مردم این دوازده جلدیشون سفاهاتش با فهم میکنه الان در بحث احکام عاریه. از کلمی که از مسائلی که از اهل صحابه مطرح شده بحث آریه است. آیا آریه یا کتاب تو پیش و باشه از درمیت اتفاده کن بره تلف میشه آیا زامن هست یا نه ادهه میگوخن در آریه زمان هست باید بدهیم شد شد. از کلی در صحابه از مثل حسن ابن حباس و از مثل ابی هریره و از مثل غم... چیز به اصطلاح ما به اصطلاح مثل در اسم که از صحابه هستن. از ابن عمر و عبدالله ابن عمر مهم بشین عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمره که قائل به تزمین بودن و باز از صحابه از امیر المومی سلام الله علیه و از عمر و ادهی هم نفسده که زمان نداره در باب آقی از کرد این مثال باهر همین قاعده علیه که آیا زمان باشه یا زمان نباشه این مثال همونه وقت ما برای اینکه یه مقدار تاریخ مسئله حدود مسئله روشن بشه که چی بوده از این کتاب محلای نهز از جلد نهوم سفه 169 به بعد از اون چه تا این که ما دیروز خوندیم در بحث گذشته، اون نقطه مهمش غیر از نسبت به بعضی از صحابه نقطه مهمش کلامی بود که زهری نقل کرده بود معاصره از جواد سجاده ایشان عجمع رعی و قضاد علازالک از رع و شروع و ناز چون اسم شرعه هم آمده احتمالاً برگرده پسه به زمان شره که فازی زمان عمر و بعدم زمان همین رو ادامه داشت معروف اینه که تا بعد جرمه کربلا هم فازی کوفه بود بعد از آشورای شنسی پس محلوم شد که این دستگاه پرزایی این روزی چون دیده افکار میان میگن آه این آه از من آریه گرفت دیده طرف شده دیده این مشکلاتی ایجاد کرد این کار رو انجام دادن هنگه این مطلب درست باشه اگر این مطلب درست باشه معلومیش از همون سالهای چلو پنجام این مطلب یواشواش در دستور قضایی را افتاد و آیا به عنوان یک حکم تق... چیز بود به اصطلاح به عنوان یک حکم ولایی بود احتمالی که من میدم حکم ولایی نبوده البته دستگاه مثلا اینجا به عمران عبدالعزیزم نصفت داده همینجا به عمران احتمالا دستگاه سیاسی هم به خاطر همون دستگاه قضایی بوده. و احتمالی که من بیشتر دیدم اینها از موارد استحسان بوده من در زیر سه توضیح دارم از نیمه های اول قرن اول یعنی سالهای دیست و سی مثلا سالهای سی اینها عبدالله مسعود این مسئله رو ترمی کنه ماراه المسلمون حسنه فاهوه اندالله حسنه که اصلا یکی از راه بوده که برای خیلی از مشاقی که در جامعه پیدا میشه درست رو کنه مثل زمان ما مسئله بانداری چون که جامعه استان و همینش رضا سده این میگفت که حرفش این بود ولو با بعد در زوابط دینی نسازه مثل رباب بلان لکه ما راه اول مسئله اون حثرا فوالله حسنا هر کی جامعه اسلامی راه افتاد مورد قبول شد همین قاعده قرینه این اصل استثنای اصل بعضی از عبد الله بن مسعود ها بین اهل سنت کاملا حتی در ایمه ها مثلا به شافعی استاد استثنا قبول کردن مالک قبول نکردی چون شافعی بود و همینجا خوندیم اقوالش رو بلکه الان به نسبت شده خود نمیشه از علایم بهرها این بیشتر به،, به نظر من استحسان میمنه یعنی قضا این کار را انجام دارن در جلو مشکلات اجتماعی رو بگیرن و شخص مستعی رو زامن قرار بودن لذاب بعد این حرفان استفاده داده شد به عبدالله عباس و عبدالله نعمر به نظر اینا اسفت ها توشن نیست البته اینجا هم آقای ابن حرز اینا رو میخونه و میگه نا داره که اینها اینطور نیست اینا قرار قبول نیست در هر حال از توقه های معروفشون هم شافی و احمد نهنبه قائله به زمان میشن و حدیث بسیار معروفی و هم یه آشواش نهیم این حسن بصری از کارم حدود سال سی و هجری از ظاهر در پوزستان بوده از حمال خودستانی میاز به بسریه سال سی زمانی که اون در کوفه بوده و با امروان ملاقات نداره این که نسبت دادشده بیاساسه تا حدود سال و وفراتشه این در این زمان هم این قصه را نعروه کردن که حسن از سماره نعروه کرده علالیه ده ماه اخزد حتی توعدی این تعلیق شد در کسانی که قائل بودن به مسئله زمانه حالا دنیده های کسانی که قائل به زمانه هم ایشون و هجو به قوله نالله یعمارو کن انتراید دول امانات الا اهله ها بعد ایشون جواب میده نه هست من چون نیم پس از بازه بستش بشن یه جواب نقضی میده که ما اصولا بازه جواب نقضی نمیشیم بعد میگه نمحو محمورون به اداه ها مادام قادران درسته ولیکن تو این زمانت نیست خوب قطعه نیست اداال الامانه یه چیزه زمانت چیزه دیگه یعنی چیه بسه مراد اینا چیه این آیه میگه شما فرصم کنید کتاب پیشون امانه رو سر کنید اما نمیگه که اگر کتاب طلب شد بدلشی بدی این توش نیستی دیگه میکنه. زمان زمانه یعنی اگر خودش نبود بدلشی چون تو این آیه نداره که بدلشی نهایت تو این آیه داره که امانات ها رو بکن. میگه ما هم قبول بعدشون بعد وارد میشه بگیم داد وارد میشه به روایتی که مال صفوان بن امیه بوده که در جنگ حنین بعد از فتح مکه پیغمبر کم داشتن یه مقدار از اون زره آیه گرفتن این یه مفصل ایشون متعرض اسانید این روایت از صفوان میشه صفوان بن امیه وقتی یه اوورده مفصل بله که بعد از که پیغمبر وقت ازش خواسن سوال قصو یا محمد مه قصو رو که ارام بشیم فرما دادن بن اریهتون مضمونه حتی این روایت که پیغمبر با صحبان این بحث شد اینه ما هم الان داریم تو روایت خود ما سرش معتبره پیش ما سرش معتبر ما از امام صادق داریم اینقدر مشهوری که ایشون هم داره من جمهور ایشون میگم ابن وهب این از علمانیست که مصر است انه انس ابن ایاد انه جعفره به محمد انه عبید امام باغه انه صفوان ابن عمیه اعار رسول الله صلاح هم فقال اعاریت المضمونه هم قصدون فقال بر اعاریت المضمونه اینجا هم شد برایت ما هم دارد موام هست همشی که به سری صفوان همین مضمونه این قدر من روشی تو داشتی که سلمیان به همین کریقه ما نهار کردن برایت البته ایش همون مباحث و حجیق خبر که اون بحث قبلی هم اشاره کردن ردش میکنی میگه حالا منقطه اون, منقطه اون منقطه این محسن لن محمد از نعلی یعنی مولاد امان باقی لم یدر سفوان تطور امان باقی اینه سفوان خالبت سفوالله ولن ونا غلطه الا بعد موتی به ده اصلا ولادش بعد موتی سفوان ابن امیم اینم اشکال ایشان به این روایت سندن حالا من نمیخوام مولاده این اون اشکال کوبراییست یک نقداری ایشان متعرض این روایت میشه شد. من دیگه میمیخونم چا تا در میپسندش به ما دماغم ساده بود کنگر در تمام اصامیرش هم از همینی مناقشه مناقشه میکنه این سرمت توی شراجه هستی مناقشه هستیم مناقشه هستیم مناقشه هستیم میکشه خوبی مناقشه من فقط به صور اقتصاد اینجا که به این صحبت در ما قابل قبوله تقریبا در, فرم. در روایات صریحه‌ی ما قصه صفوان که ذره پیغمبر از او گرفتن هنوز مسلمان نبود تو جاه می‌خواستن دارن چند داشتن از او آرایه مضمونه ازش حالا در جنگ که به فیلم رفت که خیلی مشکل بود با به فیروزی روی ها بعد چهره هر داستان که ذره‌هایی که به صفوان به ما آری داده چند بود جنگ کردن چند تا ذره نبود درصفه چکان گم بود جده بود بس طریق مرمان فرمون صفحان فرموندن که بدیم این زرایی جیگون شو گفت نه یارستم که من مؤمن شدم و حالت کوفه بود حالات که گنبال این حرفا نیسته اون وقتی میگفتن بال آری مزمونه به حساب بخشید اون چندتا هم که گنفر و کن از پیغمبر نخواست دقیق فرموندید این قصه در روایات ما مسلمه اون دکت رو یک نقطهی که اصولا در کل به ح یک آیه خسر و عالی مضمونه هست یا نه ما پیش رو مسلمه، روشن دو مضلونشیه اهل سنت نقل کردن و مضلونه این درسن که آلیه طبیعتن مضمونه روشن کن سنت مشهور به سنت نهازم چنده بردیگه اینجا می‌شود مثلاً مهم اهل سنت ندارم یعنی من دیگه می‌خوام بکنم مثلاً یک منکاریه احمدزاده مشوره این احمدزاده مشوره نصاریه لذا نصریانه از آن می‌گویند که خیال ندارند کیشون از این رو وقتی ما باقره شروع می‌کنیم برای ما بودورگان خودش هم مشکل داره تا از افسانه ما نداره من خواهد بود وسیله تاریخی بشه تحس و نباید اهل سنت این روال قبول داره لکن اینجور معنا کردن که آریه طبیعتاً زمان داره ببینید که ابن هرز روایت قبول نداره. پس چند تا مسرکتا اینجا شد به حساب ظاهریت به روایت قبول میکنیم یا نکنیم؟ ما الان به حساب مذهب شیع قبول نداره. دو آیا قبول کنیم دلالت میکنه و اینکه آریه مضمونه اینجا شیعه محالفه این مشکل کار ما باستنیجنه. شیعه و در روایات ما هم شده که در اینجا پیغنبر شرک کردن زمان بود. نه اینکه آریه ذاتن زمان آوره این مطلب رو سنت حدیث رو اووردن و استظهار کردن که آریه زمان آوره خود آریه فیزاته ها ابن هزم رد کرده این مطلب در در روایات ما آمده شده این قصه. البته استظهار این شده که زمانش با شرطه که بل وارد که مضمونه. و ما اینه که روایت هم داره که آریه زمان نمی‌داند الا این روایت آریات مضمونه هم به واسطه شرع کرد. ولی ظاهر اینه نه درستان ما احفت کردیم شعون علیه السلام یک آیا این هست از فیلمبر هست یا نه یک دو معنا و تفسیر او و همین مسئله رو شما گفتیم در روانه ما آمده از حجالی به کار به ایه در کتاب احکام یه یعنی هم آمده ایشون روز علمه زدیه ایشون زمان حضرت حادی دنیا دنیا در ما در اول اثر کیفت سهراب در یمن اولین دولت زیدی در یمن تأسیس بشه به نام یحیی و در اصطلاح زیدی‌ها به امام هادی میگن که الان هم چند بار ارتش شیعه حادری هستند زیدی حادری مثلا میشه اینا سلطنت بنی حسن است بنی‌هاس حسینی تامین توازن است خدمت ایشونم عجیب هم قصه صفوان میاره یا حضرت حسین بعد میگه آریه چیزات ها مضمون نیست مگر در دو صورتی که این که شرط بکنه یکی این که خلاف بکنه مثلا میگه من به تو ااریه میدم بشه خود مصرف بکنه حاضر دست برادرش مصرف بکنه زایع شد میگن خیلی عجیبه در معاملات ما هم اینطوره اینم خیلی با ما موافقه نیستن یا حضرت حسین از عجایب اینه که این روایت هم اونم مذهب ما رو گرفته پس سفا مثلک تو این مطلب تو اینجا موجوده یک این روایت درست نیست که ابن حض بیشتر دنبال اینه دو این روایت درسته مهناشی نسته آریه مضمون سه این روایت درسته لیکن آریه با شرک مضمون میشه نه علا آریه فیزاته ها آریه فیزاته ها نیست. بخی ابن حزمی که مفت نرد می کنه در آخر بحثی از صفحه بعدی در اینجا نهی نهی نه رو بکنه نهی رو بکنه در صفحه بعدی از طریق باز احمد ابن شعید نسایی نه رو می کنه و غذاروبین آمن خطیقه می گه این حدیثان حسن رو قبول می کنی این که هم صحیحه این مفت رو قبول میکنه کنه ابن حزم این مفت رو قبول میکنه می کنه ببینی مایین بحث ا به اصطلاح یه لبن امیعن عبی امی قال قال رسول الله اداعتت که رسولی چون از دو دو بزرگ بود فعطه هم سلاسین دره ان زره بود و سی کار و سلاسین بری هم یا رسول الله اعاریتون مضمونه امعاریتون معداد اگر این محطم باشه این فقط یه جاوری محطوبه این معیه در همون کلام اهل بیسی در فهم شهر معلومشو آریه دو جوره آریه معدام آریه مضمونه آریه که معدام موجوده رفت بکن آریه مضمونه اگر از این رفت هم بدنشه بدن اگر این معدام باشه ما این معدام نداریم الان در کتب ما نیست در مشکور مسئول اهلسداری شام زیادیان نیست این محطم من فقط اینجوری دیدم میشه از اینه احمد روشایی دارم استفسانه کده از چند جه دیگه این محطم موجوده اگر این محطم باشه این همونی سه احضبهی پرموندن فقالت یا رسول الله ام آریتون مضمونه اما آریتون مواداتی خیلی لکیفی این رو باید اگر باشیم اما اون ادا غیره در زمانه فقال بل آریتون معدات اینجا دارد که آریتون معدات بعد ایشون میگه که آقا حدیثون حسنان لیسه فیشه ای این من ماروی فل آریه خبران یسه غیقه و, و اما ما سوا فرای و اشتغال به احتمالا یه سوا باشه عربه چه بحث نداره روایتی بیدنی جدان در بحث نداره و قد قرب قطیه بین از زمان وله ادا من که ادا یه چیزی زمان چیز دیگه این هم راجع به روایت صفوان پس معلوم شد که صفوان در مسابر ما موجوده و که نهره برخورده از خواب رو با این روایت از کردن و برخورده روایات روایات ما این از که هم کردن بر شد. البته دیروز خود ابن حد روایات المعنی نشوته اصلا قبول نداره تبکه به خبر دروغی و جعری از اون به تعبیر خبر جعری اسم میکنه این یک روایت بود راجع به آقیتون مضمونه یه روایت دیگه هم هست خیلی معروفه بین اونها تا حدی نه خیلی. در کتاب نبی شیوه از اوامامه باهیلی در خطبه هجت الودا این مست در روایات ما در هجت الودا نیامده یه بود الى آریتون معدات و دین و و زعیم و این تعبیری که از سوش این طوریه باز تعبیر دیگری داره شبیه همین باز به سن دیگری از نسائی نرم کرده از امامه همین و مثل دیگری هم داره الاریت و معداد و المهت و مردوده این خودش به عنوان یک قائده هم شده مرموم استاد آی در جلد شیش قواعد این الريد رو در جلد 4 مسعر فرموده این رو در جلد 6 اجزایی و غارم تحت عنوان قاعده تا از زنیم و غارم ذی در حالا الان خیلی مصطلح نیست در اون زمان به معنای کسی که یک چیزی رو به عهده میگیره چون انها داره عهده گیرن فعلا وارد میشن علما ایشون تعریف کردن که معظم این انواعی رو که شخص به عهده میگیره در جلد همین از ذیما غارم که به اساس سه باب معروف و یکی باب زمانه یکی باب حواله یکم کفاله حالا من واضح ترقای بین این ها نیم مخوام بشم کنجا جینجا ایشون همه این سه باب رو سه کتاب معروف زمان و حواله و کفاله در زیل از زعیم و غارم این حدیثیست با این عنوان از زعیم و غارم و, و مردوده یا معدات و المنحت و مردوده یک چیز دیگه هم داره اینو خوندم اره. سه چهار تا صفحه و غارم ول آریت و الاریه تو مردوده یه دستور دیگه هم داره واسه با زین و مرج نه خیر لازم داره چیزی هم داره یکی دیگه هم داره این هم یه حدیثی است که به این تمسک کردن برای این که زین البته زین کسی است که ضمانت یه چیزی رو به عهده بگیره مثلا میگه من ضامن هستم که مثلا فلانی این کتابی که از تو گرفته به تو بده. و از زنی مغاره معناش اینه اگر من به عهده گرفتم ولو کتاب تلف بشه باید به من بدن من که ضامنه. هر شد که براتون یه یعنی آقایی هستون تکی از شخصی گرفته. خیلی پیش اسدیانم یعنی آقا من زامن من زامن که این پتور رو به تو برستم حالا اون آقا که من زامن شدن پتور رو ازش خلوخ هستم برس. آب پولش هم سوال اینه زامن کیه؟ اون کسی که اطلاف کرد من اطلاف محالاقه قاعده زمان یا نه قاعده زمان به این معنا زمان اطلاف نه من چون بوده گرفتم ولو تلخفشه به بوده این خوب دقت بکنی من چون به عهده گرفتم کلمه یه زنی که در سلام هم بر استعمال شده در خود قرآن هم به این معنا آمده در سرزادی یوسف من جا بیهی همل و بیر و انه بیهی زنی زنی نظامه به همین معنی زمان آمده این راچه به این حدیث مبارک به این حدیث هم تمثب شده برای اسمات عرامت راست ولی آریت و جواب ابن هرز همینیت که این روایت ثابت نیست سند روایت اشکال داره بر آریت و محددات باز معنای زمان نیست معناش پرداختشه نه زمان این جواب چینا را آقای ابنه هست این رباره از ذریع مقابل کل نه در رباره اون نگه در مثل اوال لالی اینها ها نقل شده اون هم از کتب احسان در چون تصریح که کتاب اول از امی موامنی واهمی در حسوند این روایت از ذریع با این معنی. اصولاً در روایات ما اصلا وارد نشده دقیق می این راجع به این قسمت که حسولا این در روایات ما کلن وارد نشده از اجراعی که در اینجا هست این, این که همینطور که اون روز عرض کردم که باید بایدن واقعا با با از به این کار در اینجا ما اصلا در این مسئله روایت داریم از موسد جعفر سلام الله علیه که این روایت را برد میکنه اصلا این چیزی از خود موسد نجعفر روایت داریم که از امام سوال میکنه این هم از روایت عرضه سابقا عرض کردیم سابقا که بر مره موسیقی گای عرض میکردن حادیث رسول الله رو اصلا ما روایت داریم که امام میفرمایند به اینکه اصلا این حدیث درست نیست به جه اینکه نه که باقی درست کشه و تحجیبه که مرموم استاد آیه بجنودین حدیث اووردن یک جوری توجیح کردن این نیست این کاملا واضحه که روایت مخواد نفی بکنه ما اضافه بر اینکه این روایت نداریم و سر این که این روایات در مصادر ما ذکر نمیشه در حقیقت نکتهش این بوده دقیقاً نقطه نکته مطلب چیه نکته مطلب این بوده مثل ابن حزم که صراحتن این مطلب رو قبول میکنه، کنه در حقیقت امام هم علیه السلام می‌خواستن در این جلد بفهمون که اصلا ثابت نیست ادلته من از این که روایت در کتاب کافی هم آمده این دواتی که هم میخوام بخونم در کتاب کافی هم آمده و قیلی از کتاب کافی در فقی هم آمده به یک محسن و در کتاب تحریب هم با سند دیگری در این جلد شاپ جدید جمال احادیتی شاپ عجلشه، تنظیم بهتر شده جلد بیست صفحه چهار سد و پنجا و این رواید این سد و این دوره از مسادر متعدد اینجوریست در کتاب کافی محمد ابن یحیان بعض اصحاب نام ارسال داره به خاطر بعض اصحاب نام با که احتمال داره شناخته بشه. و در کتاب فقی مستقیما از حسین خالد نقل کرده در کتاب کافی هم به حسین خالد اما باسه نه. اما در کتاب تهذیب محمد بن علی ابن محبوب امام محمد بن نیسا که احتمالاً این صفر کافی هم همین باشه از عسكر این شخص محمد بن نیسا بن عبید بغدادی است که به ذهن ما چون در ترجمه اش نشده. نشده با دغدغانه خیلی طولانی صحبت بشه به ذهن ما ایشان به ایران آمده تا قومی آمده و این مقدار مصادری رو در اختیار قومی ها قرار داده که محل کلام هم بوده عده‌ای از مسادرش حالا من وارد بحث نشم که این بحث طولانی داره این آیه محمد بن ایشان به اصطلاح محمد ابن عیسی ابن عبید ابن به اصطلاح یختینه با حسن ابن علی ابن یختین که سر امون میشن این محمد ابن عیسی عیسی که سر عبیده عبیده که سر یختین اصطلاح یختین جوز بزرگان دعات بنی حباسه زندگیش وقته برای نهزت و قیامی که بنی حباس کردن تا تو بچهاشو بکتر علی و دیگر روز ولکن عده از این بچه مثل خود علی و مثل حتی همین عبید محمد نیسترن عبید عبید و یعقوب و عده از بچه ظاهر، ظاهرن جزء امامیت عدهشون که قطعا بقیه ایسان ظاهرن یکی دوستشون شوان با خودش باشن جزء عباسی ها باشن این راجع به خود یقین هم بحثی هست که عده اعتماد این که ایفران شیعه اثنان دوست باشون درست نیستی شوان درست دعات به ام قال قلطل حسن علیه السلام لفت رو کنی جویلت و قول و ناس دیگه صراحتن همین حدیثه فقط داره از زامن و غارن به این من حرکت کردم یه نقرار بردیگه به لغت چون در زمان رسول الله و زنی بوده در زمان امام صادق زامن سیده عجیبه اصلا صراحتن همین حدیث را عرضه میکنه برمان قال قلطلح اولو ناز از زامن و قال فقال لیسه علی زامن قرمان خیلی عجیب است سراحتا امام درد میکنه این نمال قرم علا منعک علال مال حالا اگر ما ده به اصطلاحی موزی بگیم امام ما خواهیم زمان با اطلاقه من علال مال اطلاق من علال مال اطلاقه دوله پس این مطلب که ایمه علیه مستان در مسادر ما علاییت نیامده یا از زنی و و امانت و معدات و عاریت و معدات نیامده معلوم میشه اصولاً مورد نظر ایمه نبوده خب بقیه چنه تحصیل نیامده این احتمال حالا یکیش اینی که از زنی و کسی که زامن بشه قرامت و عهده برای اهده حوز امام فرمده اون کسی که خورده به عهده بود چا با زامن باشه من زامن بودم که این پتور رو به توی بداره که من زامنم ورداشت خورد پتور رو زایه کرد بروخش رو پولیشم خورد آیا من زامنم امام فرمده من اکرمان زامنم یعنی اصطلاح دیگه اطلاح خواهده زمان به اطلاح رو امام قروری میکنه نه به مجرد التظام نه به مجرد عبد. و چون اله آیت و هم زیل همینه دعید نیست امان در حقیقت در اصلا این تقدیرشون اول و ناس از زامن و غاره قال علیه السلام لیسه على زامن قرمان انما در فقیه آمده الان منحکر وقتی این مضمون در کتاب سبخورزا اینطور آمده رویه لیسه از زامن قرمان کسی می‌دشه؟ حالا <تصفيق> قرما علامت اكل المال این روایتی رو که حسن نعمی نیفتی از حسین خالد نقل کنه این اش دقیقاً اشاره داره, داره در کتاب فیروزا بوندرود البته اما واسه به لحاظ سنتی بود بحثی که خود حسین مشکلاتی داره حل مشکلاتش و کار سنگین و اما اون روایت این, این اینه در اینجا در کتاب اوالی از اوال ربا ابو امامت الباهی واضح که از اهل سنته ان نبی خطب یوم فتح مکه اما به نظر هجت الوداه اشتباه کرده اون در کتب اهل سنت سمعت تا نبی فی هجت الوداه این دو یوم فتح مکه چرا هم فتح مکه باید داره یکی راست شده فقال الاریت ها مردوده نه هجت الودا سال دهه فتح مکه سال هشتی باشنه <تصفيق> و منحت و مردوده و دین و مغزی و زنی و غاره. باز در خود عوالی داره از زنی و غاره. مستدرک هم از دورالالی که اون امال صاحب عوالیه پس اینها در بین ما کلن صند نداره این هم راجعه به از زنی و غاره که من فکر کنم بهترین وجهش همون نفیه حضرت سجاب و حضرت موسیقی جعفر و حضرت ورودش این هم راجعه بیدی سه بودی دلیلی, دلیلی دلیلی کتاب نحر نقل میکنه از قول اهل سنت در باقی اینکه آریه مضمونه و رفت رو مارووینا من طریق شعبه ان قطاده ان سماره من اینو ها لبان نیده فقط در این جده میکنم چون تو قواهد مشروع کن قطاده ان حسن ان سماره برد میشون میگه حرابی این خیلی. ز بعد میگه و این رواست مشروعشون اینه این سنده سهیه این همون است که در کتاب حاکم گفته سهیوان علاشرط البخاری آده حدیثون سهیو الاسناب علاشرط البخاری البته اینجا این متنه علالیت ما اخبرد حتی تا عدیه هم این متنه حروم کنه بعد ایشون میکنه خود جناب آقای به اصلاح امنه حسن لم يسمع من صنوره که از لو صح وها و زمان. حالا در این متن که اینجا آمده یا در فارسی چهل بیاد استاد سر اما در وی همین متن با این سندی این سید بن عبد العرب ابي تا و من میخوام واژه بچه حاکم هم در مستردک درجه به دو صفحه ای شله حاکم نرمی میکنه امیتر اول سننشو اوورده آخرای سنن با اینشون یکیه ایشون هم حتی تو عدی یهو اوورده محط تو عدی یهو اوورده گفته که حضا حدیث رو سهیول على علاشت البخاری عجیب اینه که در این متن که حاکم نرم کرده بعد از این که کرده حالا لید ما اخبرت حتی تو عدیه هم خود دقیق میکنی سم اینال حسن نسی حدیثه ممیگم خوز بالا خوز اینه خود حسن بسیم بعضها گفت من چیزی نگفتم خیلی صنده داشتیده سم اینال حسن نسی حدیثه سوال حوه امینو فلا و ما نعره چیز در اینه که خود راوی چون این روال کردن شمااره منحثر کسی غیرره سواره نرم نندا. از سواررا مانحثن در حسن بثی کسی که با بهو نار نکرده. د از اجرایی بینه که بعد خود حسن باید <coughs> باز برگشته گفتن و هم چ ندان این میگه که واقعا مصاب بوده بالا بود اینه که خود حسن باز برگشتی من نمینداره ازته رو ابن در اینجا اما، در این صفحه 172 در رد حدیثه تو صفحه 170 داره و رمنها علی حسن شم رجع انزاده این انداریش حالا رقیه حسن به عنوان فتوا مهم نیست نه در من اونی که الان برای ما خیلی اهمیت داره میگه اصلا من حدیثو نگفتم خیلی لعجیبه مرو حالا اون تذمین به جای خودش نه اصلا گفته سم ان علی حسن نسلی حدیث او هو فقال هوه امینوش لا و ما <تصفيق> یعنی تنها حدیث اساسی که اثبات زمان میکنه و توچه انفراد درده انفراد داره خود اون راوی منفره اصلا فراموش کرده داشت میگونتن آسان اینجور گفتیم و این آدم نمیدنه نه حدیثی از خماره نهره و برعکس پا میشه به زمان یک نکته خیلی مهم در اینجا در نظرم اون جبل فیقی که ما خیلی این داریم محضوب میشه جبل فیقی در نیمه قرم دوم این بوده که در نینه زمان منحصر است در این حویث علاویت خوب دقیق این نینه دقیق میکنی چی میخواهیم؟ یعنی چند ما خود حسن فرسی هم می دونسته که دلیل نمان این حلویت دیده. گفتنم کمچنگ دیدن گفتن ثلاظ زمان. این نفته شیدی مهمده. چون این زمانی که حسن فرسی زمان امام سجاد و عبائل امام باخره. زمان امام سجاد و عبائل امام باخره. یعنی خود حسن فرسی هم می دونسته که اگر حلویت نباشه. دلیلی به زمان آلیه که نداریم. یعنی یک حلازم یک ارتفاع ففی اگر کسی گف آلیه مضمونه علیه اگر نگف نه این خب ربایت هم از زنگ مقارب بلی این اللہ یه مرکم از دل امانات اله اهلها بود یعنی خود حسن بسی هم از تو از دل امانات اله ها زمان ندازه زمان رو زامن بودن رو از عرقیت نمیده خوب دقیق بکنیم اگر این مطلب روشن شد پس اگر در روایات احل بکن به اتفاق آمده که آریه زمان نمیده دیگه روایات ما مستفره روایات ما آرز هم ندهد مزاحم بیدیم که از عریه نرساله هم شده، از عمر هم از صحابه شده. پس آیا به نظر شما این کافی نیست که این روایت علیت اعلی پسا تعیین مرجع شده؟ خود हसन در اون رابی اصلی چطور گفت نسی را در حدیث؟ این دست در کتب اهل هست این در جواز حدیث است. یکی از نقش‌های حدیث شناسی می‌دونه که نا دارند یه رابی مثلا سی ساله بوده یه حدیثی که بعد از 10 سالش گفتن یادم این داره اصلا متعرض نشه. تستقاط آمدن از تو نه روی سنه نگه و کشی هم داره هستن این وقتی که یک ازه عهده بسه بودن چند در ساده با آمودن هزارت که ما همه حدیث خب مثلا اینکه از این احادیث آمودیم از شما حدیث بشنیم جبر ما فران از احادیث هم چیز داریم که بردنیم خوندن سه حدیثان ها خونه همه همه دروغه همه همه همه همه ه گفتن نه قبول نمی‌کنم تو ثواب در شما نخرتت قبول می‌خوند هر با هم این یک مشکلی هست در حدیث اهل سنت خیالتون دقیقه اول بشه بریم در حسن نه یعنی یعنی که شما یاد اندر میاتون اون چه روشه و این حدیث هم انفراد حسن کسی یعنه اون را نگردید سمران انفراد رسول در کتابو بیان اون حلقه اصلی نقل همی که من یادم نمیاد بعدم دقیقاً خلافش فکر میده قال قوه امینو بلا زمان هره این نمیده این شما ما الان در این پیگیری که کردی این حدیث علیت رو که الان دراتون گفتیم مسادر اصلی سرکی ها و تازه این هم سردید که به قول حاکم از سحرسامینش همینه اصلا اصلا اصلا اصلا میده که رباید همینی که حاکم از گذر صحیح اصناد علا شرط البخاری تو اون محن صحیح صحیح جسی خود حسن هم فرامون شد حدیثشو به قطعه خود حسن هم حدیثشو فرامون شد نقطه ای که من خیلی روش اصلاح دارم من در اصلاح دارم اینه که این معلوم میشه تو ارتکاز حسن بوده که اگر ما حدیث و منکر شدیم در آریه دی که انما دلیل مونه حسره به علیه بیر پس اگر ما دیدیم در روایات اهل بیر اجماعاً بدون ما آرد نفیه زمان شده انصافاً بسول و بسول از این مرموستاد موضوع استدوره بعد از اون نقطوع استدور حدیثی که اساسش از اونجا شروع میشه باید نید ظاهر مگه سن مصری که در صدر از مرحوم محقق قمی نقل شده متأخر হইده میشه زیرا بله انصافا هیچ نهره وصول و اطمینان این حریز پیدا نخواهد و شواهد هم همین رو حکایت میکنه ظاهرا در سالهای 450 در صحه قضایی احتمالا هم از کوفه مبدا شده کشور حاقی باشه تصمیم میگیرن در باب زمان از برسو کنه و این حدیث عدلیت رو هم مشهور میکنن. ولیکن چون بی اساس بوده حتی اون رابی اصلیش هم ملکر میشه هم منکر نقل حدیث میشه و هم منکر خود رو حکم میشه حدو این را به حدیث علیت از زنی مبارم و رقابیت مهندان که خوندید این هم سر جفر زنی مبارم از زنی مبارم درست نیست و در هیچ که از ما خود را حدیثی ما خلوزن این دوتا نیامده. پس کرده این اولین بار شخصوصی در مثل خلاف برده که یه طبق احتجاجیه به ما جز جدره نه با خواهد مخواهد احتجاجن علیه هم نه ها نداری احتجاج با در غنیه مثل خودشان این مرنه یه در تنزیر دیگران این حدیث نه ور نه از طب اهل سنت میاد نه از شیعه خصوصی در تفسیر اون رو راضی اخیراً در طب اهل لالی این کل مصادر ما از این حدیث با این معنی که خود حدیث در مصادر اصلی اهل سنت داره لذا به نظر ما با این قضیه علیت بودن بردیه است چون منظور استاد اون قائله خودشون تمام حدیث شرعی ضعیفه و جرب حدیث رو هم به به اصطلاح به عمل اصحاب قبول نذارید چون که این مختصر جواب بزن. اما بابا این تحلیلی که از سر روشن شد که انصافا شواهد وجود معیدی به هیچ واقعی نیست هیچ نهبه ما ببینید صلی